حکایت در عقد بیع سرایی متردد بودم، یهودی گفت آخر من از کتخدایان این محلتم، وصف این خانه چنون که هست از من پرس، بخر که هیچ عیبی ندارد، گفتم به جز آن که تو همسایه منی، خانه ای را که چون تو همسایه است، ده درم سیم بدعیار ارزد، لیکن امیدوار باید بود که پس از مرگ تو هزار ارزد.